صوفی باده به اندازه خورد نوشش با ورنه اندیشه این کار فراموشش با آن یک جر امه از دست تواند دادن دست با شاهد مقصود در آغوشش با پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با شاه ترکان سخن مدعیان میشنود شنود شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد گرچه از کبر سخن بامن درویش نگفت جان فدای شکرین پسته خاموشش باد چشمم از آین داران خط و خالش گشت لبم از بوس روایان بردوشش باد نرگس مست نوازش کن مردم دارش خون عاشق به قده گر بخورد نوشش باد. به قلامی تو مشهور جهان شد حافظ. حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد.